الفصل و ساله فصل سوم راستیدین به فصل چی؟ گفته بود که مقدمه کتاب دارای سه است دارای چند فصل؟, فصل؟ فصل اول که تعریف علم نه بود فصل دوم که کلمه و اقسامش رو توضیح داد فصل سوم که تعریف کلام تعریف چیست؟ الكلام لفظون تعريف الكلامي الكلام لفظون تضم الكلمتين بالإسناد. كلام لفظي إسكي متزامن الدكلمه عار و بينه أن دكلمه رابته إسنادي عار. بينه أن دكلمه رابته إسنا؟ إسنادي. يعني بهم بيجي نسبة قادم إشان. والإسناد خودش لإسناد يعني إسناد يعني كيف؟ والإسناد إسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى نسبة قادم الكلمة بكلمة دجال. مانند زیدون جا از زیدون مانند جا از زیدون اینجا اسناد وجود داره چیز وجود داره؟ اصلاد باستید برخلاف کلمتو چی؟ قلم و زیدون. قلم زید اینجا اصلادی وجود؟ جا داره متوجه شدید؟ بینی پیل میگیم جا از زیدون زید آمد جا یکی مصند یکی چی؟ مصند دیلی؟ ولی باقید لگیم قلم آیا این رابطه وجود دارد قلمشه خبری که ندارد چیزی رو به چیزی دیگر نکرد میگه پس کلام است که متزمن دو کلمه میشه ولی بین اونا چه هست اسناد هست و اسناد نسبت دادن یکی از دو کلمه به کلمه دیگری به حیث. بگونی که تفید المخاطب فائدتا یصح و سکوت و علیه که به مخاطب یک فائده ی می میده که سکوت صحیح باشه موقعی که منگم زید آمد خو یه خبری به شما دادن یه فایده ی دادن که این دید که سکوت کرد اما اگر گفتم قلم و زید آیا فائده یکیش ما اومد، جمله کامل شد، پس کلامو از اینجا فهم مانند قام زید زیادی صاد. ان اندالکلاما لا یحصل ایلا من اسمین، پس دانسته شد. فقول ان اندالکلاما لا یحصل ایلا من اسمین، پس دانسته شد که کلام حاصل نمی شد نه از دو اش ما, ما نحو زیاد واقفون. مانند چی؟ زید واقفون زیدی ساده است یکی مسند است و دیگری مسند الیه. زید مسند الیه هست واقفون همچه است؟ در مبتدا خبر مبتدا مسند است چی مسند الیه هست خبر مسند در فعل و جا از زید جاءه مصند زید مصند اله که شما در محبه خوندید. نرو خوندید ویسمه جملة اسمیت اگر از دو اسم باشه بشتویگن جمله, جملة اسمیه او فعل و اسم یا از فعل و اسم پس کلام حاصل نمیشه مگر از دو اسم مانند زیدون واقفون او فعل و اسم یا فعل اسم یعنی تشکیل نمیشه مگر از فعل مانند جلس سعیدون پس جمله تشکیل نمیشه کلام تشکیل نمیشه مگر از دو اسم یا از دو فعل یا از اسم مانند جلس سعیدون و یسمه جملتا فعلیتا که در این حالت بشونگن جمله اذ لا یوجد المسند و المسند الهی معن فی غیره ما میگه چون؟ موسند و موسند اله در غیر از این دو حالت یافت نمی شود فلابد دلیل کلام من ناچارن کلام این دوتا رو داشته باشه یا دوتا اسم یا اسم و فیل فیل در غیر این صورت کلام نمیشه. با یک اسم و یک حرف نمیشه کلام تشکیل بشه نه؟ یا با یک و یک حرف یا با دو فیل متوجه شدید؟ پس حداقل حد چیزی که حد چیزی که کلام از اون تشکیل میشه یا دو اسم باشن یا, یا, یا یک اسمو فیل. فیل. این حدعقل نشه موقع تو کتاب تذکیه میده و ممکنه کلام فشان. یک اسم و حرف و فعل داشته باشه بود دا این حداقل حد نشه حداقل حد چیزی که کلام تشکیل میشه یا دو اسم باشن یا, یا یک, فیل. فیل. یک اسمو و دیگه هم از این دیگه نه مثلا با فعل و اسم کلمت با یک فعل و حرف کلم تشکیل نمیشه. یا با فعل با اسم و حرکت کلم تشکیل نمیشه. نمیشه یا با دوتا فعل خالی تشکیل, تشکیل. نمیشه. تشکیل. نمیشه خوب نه با باقی میشه بیایم جلوتر فان قیلا هذا ینتقل به ندا اگر یک شبهی نظر هریشه در ندا مثلاً نمیده یا الله مثلا خب میگن آقا یا حرفه الله اسمه در حالی که یا الله جله ها میگه اگر این شبهه مطرح بشه جوابش چیه فئن قیل اگر گفته شود هاوا ينتقب بالندا این قاعده‌ای که بیان شد این قاعده‌ای که شد که آقا جمله یا دو اسم باشه یا با فلو حداقلش اگر گفته بشه که این قاعده نقض میشه با ندا که ندا یا الله مثلا نه نحو یا خالد ما ندی یا خالد که حرف او بعدیش چه اسم به حالی که جمله معنی داره میگه جواب نجارشون اینطوری می‌دی که حرف ندا حرف ندا قائم و مقام آقا آقادرست یا حرف ندا هست ولی یا جانشین چه هست؟ <تصفيق> أدعوهات بوقت ميليا الله يعني أدعو أدعو الله يعني استدار إذا لم كيره الله روح يطلبوا يا ثلاث بيكونون كيره الله متواجد شديد قس حرف النداء قائم مقام كه قائم مقام الفعل هاس قائم مقام كه فدر واقع شديد يقبل بإذافيه اسم وهو الفعل که عدو اتربو میگه فیل هستن. فراین یعنی ساق دوبار ندا، پس این قایدی ای که بیان شد میگه با ندا نقص نشود یا نقص نمی ترجمه دقیقش.